PC. C Remember that for my time before, all of a sudden. بهفر دبیر علوم تجربی تیز روشان شهید بهشتی ناهی دو خرم آباد کانال تلگرام بهفر نه بهفر نگاهی به فضا فصل ده تعداد بسیار زیادی ستاره و تعداد بسیار اندکی سیاره پس از غروب آفتاب وقتی به آسمان نگاه می کنید، زیبایی و نقاط روشن آن باعث می شود که پرسش های زیادی در ذهن شما به وجود آید این نقاط روشن در آسمان ستاره اند یا سیاره؟ آیا این نقاط تمام آن چیزی است که در آسمان وجود دارد؟ آیا آنها در محل خود تابعی یا چه با ماجسمانی جابجا میشوند میشوند فوزه ابزارهای مشاهده اسمان اطلاعات و یافته های بشر نسبت به فضای اطراف زمین افزایش یافته است امروزه انسان با سفر به فضا در پی کشف اسرار جهان هستی و حیات در سیارات و منظومه های فراخورشیدی است در این فصل با مقدمات علم نجوم و کاربردهای آن در زندگی خود آشنا میشوید چرا انسان به فضا کند سفر می بهفر از چه زمانی آغاز شده است. علم نجوم در قدیم چه کسانی و چگونه به مطالعه آسمان می پرداختند. توجه انسان به آسمان شب ماه و خورشید و دیگر اجرام آسمانی از هزاران سال پیش مطرح بوده است. در حدود هزار سال قبل همزمان با شکوفایی علم در جوامع اسلامی، مطالعات نجومی نیز مورد توجه منجمان ایرانی و مسلمان سایر کشورها قرار گرفت در علم نجوم، آنها به مشاهده آسمان و مطالعه اجرام آسمانی می پرداختند و با ساخت ابزار نجومی مانند استرلاب شکل یک الف و احداث رسخانه و ارائه جداول دقیق نجومی کمک زیادی به توسعه علم نجوم نمودند. آنها از استرلاب برای تعیین زاوی ارتفاع ستارگان و سایر مطالعات نجومی استفاده می‌نمودند. شکل یک. دو کاربرد استرلاب را بیان کنید نوود و چهار الف. افق فعالیت استرلاب بسازید وسایل و مواد لازم شکل یک الف استرلاب. نحوه رست ستاره به وسیله استرلاب طرز ساخت استرلاب را بیان کنید کاغذ مقوایی به ابعاد دوازده دوازده سانتیم تر. نينو شوبه به طول 12 سانتی متر، نخ زخیم به طول 20 سانتی چند گرمی، پرگار، مداد، قیچی، چسب مایه و نواری نقاله خطکش. روش ساخت: یک دو خط عمود بر هم با فاصله یک سانتی از لبه کاغذ رسم کنید. نیست از تقاطع دو کمان با استفاده از پرگار رب دایره‌ای به شعاع 10 سانتی و 11 سانتی از تقاطع دو کمان رسم کنید و با قیچی مقوا را رو از روی کمان 11 سانتی ببرید. با استفاده از نقاله، رب دایره را به نه قسمت ده درجه ای تقسیم کنید و از صفت و نوت را در کنار هر خط بنویسید. چهار با چسب نیرو را بر روی خط نود درجه بچسبانید. پنج وزنه را به یک سر نخ گره بزنید و سر دیگر نخ را با چسب مایی روی تقاطع دو خط یا مرکز رب دایره بچسبانید. چگونه به کمک استرلاب می توانید زاویه یک ستاره را نسبت به سطح آفق اندازه گیری کنید؟ شش با استفاده از استرلابی که ساخته اید، زاویه ارتفاع چند ستاره را گیری نمایید. برای این کار استرلاب را در دست بگیرید و از داخل نیب به ستاره مورد نظر نگاه کنید. زاویه ارتفاع را به وسیله نخ و وزنه بخوانید. در چه قرنی توانمندی مسلمانان به اوج خود رسید و آنها چه کارهای مهمی در زمینه علم نجوم انجام دادند؟ در قرن هفتم هجری قمری توانمندیهای علمی مسلمان به اوج خود رسید و به همت خاجه نسیرالدین توسی رستخانه مراقع تحسیص شد و محیطی علمی در اختیار ستاره شناسان قرار گرفت و همچنین باعث گسترش تفکر ساخت چنین رستخانه در سایر نقاط جهان شد حدود 400 سال پیش گالیله با ساخت تلسکوب و رست آسمان به وسیله آن پنجره جدیدی به سوی شناخت دقیقتر جهان گشود پس از وی منجمان با ساخت ابزارهای نجومی پیشرفته مطالعات خود را به صورت علمی و منسجم. از منظومه شمسی به فضاهایی چه کسی اولین بار از از تلسکوپ برای مطالعه آسمان استفاده کرد؟ کهکشانی گسترش دادند. امروز دانشمندان با بهره گیری از تجهیزات مدرن شکل دو درصد کشف ناشناخته های جهان هستی می باشند. به همین دلیل از قرن هجدهم میلادی تاکنون را دوران کهکشانی نام گذاری نمودند. برای مطالعه شکل دور برخی ابزار نجومی پیشرفته علم نجوم به چند دوره تقسیم می شود. سه دوره منفی، یک دوره زمین مرکزی منفی، دو دوره خورشید مرکزی سه و پنج دوره کهکشانی زمین منظومه شمسی کهکشان راه شیری کیهان کهکشان را تعریف کنید. کهکشان مجموعه عظیم از ستارگان گازها گرد و غبار و فضای بین ستارهی است که تحت تأثیر نیروی آیا کهکشان ها هم جمع ش بخی را می از آنها بدون استفاده از تلسکوپ جاذبه گرانشی متقابل در کنار دید. و با چشم غیر مسلح قابل رویت داد ان منظومه شمسی بخش بسیار کوچکی از کهکشان راه شیری است. کهکشان موود بخش بسیار کوچکی از جهان هستی، کیهان است و کیهان خود از میلیاردها کهکشان دیگر تشکیل شده است. منظومه شمسی جزو کدام کهکشان است؟ ستارگان شکل سه کهکشان راه شیری منشا انرژی ما چیست؟ در علم نجوم برای بیان فواصل از چه کمیتی استفاده می شود؟ ما برای زندگی به نور و گرما نیاز داریم. خورشید به عنوان تنها ستاره منظومه شمسی نور و گرمای مورد نیاز ما را تامین می کند. ستاره ها پیوسته در حال تغییرند. زمانی متولد می شوند و میلیاردها سال منظور از واحد نجومی چیست؟ بعد می نزدیکترین ستاره به زمین خورشید است که در فاصله حدود 150 میلیون کیلومتری آن واقع شده است به این فاصله یک واحد نجومی اطلاق می شود. در علم نجوم برای بیان فواصل خیلی دور از واحد دیگری به نام سال نوری استفاده می شود به فاصله‌ای که نور در مدت زمان یک سال طی می کند، یک سال نوری گفته می شود. سال نوری چیست؟ آیا می دانید برای مطالعه نور فاصله زمین تا خورشید را در مدت زمان 8 دقیقه و 20 ثانیه تیم می کند؟ یعنی نور خورشید را که اکنون می بینید 8 دقیقه و 20 ثانیه قبل از خورشید جدا شده است. از خورشید نزدیکترین ستاره به زمین ستاره قنطورس است که فاصله آن از زمین معادل پس 4 مومیز 28 صدم سال نوری 270 هزار واحد نجومی است. 96 خورشید از چه موادی ساخته شده است؟ جرم خورشید کره عظیمی از گازهای داغ است و چند صد برابر مجموع سیاره های منظومه شمسی دارد ترکیب اصلی خورشید در حال حاضر از هیدروژن و هلیوم تشکیل شده است، شکل چهار که به طور مداوم هیدروژن به هلیوم تبدیل می شود. این تبدیل همراه با کاهش کاهش جرم و تولید انرژی به صورت گرما و نور است. کاهش جرم تا زمانی ادامه خواهد یافت که خورشید به پایان زندگی خود برسد. فکر کنید یک، منشا گرمای خورشید چیست؟ دو درصد عناصر دیگر 25 و پنج درصد هلیوم هفتاد و سه درصد هیدروژن شکل چهار عناصر تشکیل دهنده خورشید منبع اصلی انرژی ما، روشنایی گرانش آن، باعث چرخش زمین وجود خورشید در زندگی ما اهمیت زیادی دارد. چند مورد از آنها را بیان کنید سیال شید و سال را به وجود میامورد صورتهای فلکی چه چیزهایی هستند؟ آیا همه صورتهای فلکی را می‌توان در آسمان دید؟ موقعیت ستارگان در آسمان به ای است که وقتی به آنها نگاه می‌کنیم، تعدادی از آنها ممکن است به صورتها و شکلهای خاصی دیده شوند. این شکل‌ها را به اشیا و حیوانات تشبیه می‌کنند و به آن صورت فلکی می‌گویند. شکل پنج، این صورت‌های فلکی همیشه و به طور ثابت در آسمان دیده نمی‌شوند، بلکه هر یک در زمان مشخص و موقعیت خاص قابل رؤیت می‌باشند. به همین دلیل در قدیم انسانها از آنها به عنوان تقویم استفاده می همچنین از ستارگان و صورت‌های فلکی در جهت یابی در شب نیز می توان استفاده نمود. البته امروزه در شهرهای نسبتا بزرگ به دلیل وجود نور فراوان لامپ‌های روشنایی در آسمان شهر امکان رؤیت ستارگان در شب به خوبی وجود ندارد که به این پدیده آلودگی نوری گفته می شود. افزون بر آن آلودگی هوا نیز در رست آسمان است. وجود ابرها در آسمان نیز از موانع رست آسمان می باشند. دو کاربرد صورتهای فلکی را بیان کنید دب اسقر دب اکبر شکل پنج تعدادی از صورتهای فلکی به همراه دب اکبر و در آسمان را نام ببرید. دو صورت فلکی مهم به دو دلیل امکان رست دقیق در شهرها وجود ندارد. آنها را بیان کنید دب نوود و هفت با رسم شکل بیان کنید که چگونه بوسیله دب اکبر و دب اسقر می توان جهتهای پیدا کرد. فعالیت هدف تعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در شب در محلی که ستارگان به خوبی در شب قابل رویت هستند صورت فلکی دب اکبر را پیدا کنید سپس ستاره ششم را به ستاره هفتم با یک ستاره قطبی خط وصل کنید و خط را حدود پنج برابر فاصله بین دو ستاره امتداد دهید مطابق شکل به ای خواهید رسید که چندان هم پرنور نیست آن ستاره قطبی است وقتی رو به آن بایستید به سمت قطب شمال زمین ایستاده ستاره قطبی دم صورت فلکی دب اسقر است در صورت امکان تصویر و فیلم تهیه و به کلاس ارائه نمایید دب اسقر دب اکبر جهت یابی با استفاده از ستارگان منحصر به شب نیست و در روز نیز میتوان با استفاده از نور خورشید جهتهای جغرافیایی را تعیین نمود فعالیت چگونه در روز و بدون استفاده از ستارگان جهت یابی کنید؟ هدف تعیین جهت شمال و جنوب جغرافیایی در روز یک میله به طول پنج دهم متر را در مکانی آفتابی به طور عمود روی زمین نسب و دایره به شعای یک متر و به مرکز میله کنید رسم دو هنگام طلو خورشید طول سایه میله بزرگتر از شعاع دایره است به مرور زمان طول سایه میله به شعای دایره نزدیک می شود زمانی که طول سایه با شعاع دایره برابر شد بر روی دایره علامتی بگذارید در هنگام ظهر طول سایه میله به کوتاهترین مقدار خود میرسد و بعد از ظهر به مرور زمان طول سایه میله افزایش مییابد. وقتی سایه میله مجد برابر با شواع دایره شد بر روی دایره علامت بگذارید چهار دو نقطه علامت گذاری شده بر روی دایره را با استفاده از خط کش به هم وصل کنید خط چین آبی پنج وسط خط مذکور را تعیین نمایید و از آن نقطه خطی به میله وصل کنید خط حاصل جهت شمال و جنوب جغرافیایی را نشان میدهد. سمتی که سایه تشکیل می شود جهت شمال و سمت مقابل جهت جنوب جغرافیایی می باشد شرق میله شمال جنوب نود و هشت جهت قبله در ایران همباره به چه سمتی است؟ و چگونه در هر شهری می توان جهت قبله را پیدا کرد؟ در درس مطالعات اجتماعی خاندید که جهت قبله در ایران همباره به سمت جنوب غربی است. بنابراین با داشتن جهت جنوب جغرافیایی و زاویه انحراف قبله نسبت به آن در محل سکونت خود می توانید جهت قبله را تعیین کنید زاویه انحراف قبله در شهرهای مختلف متفاوت است. جدول یک زاویه انحراف قبله درجه از زاویه انحراف قبله درجه از نام شهر نام شهر جنوب به سمت قرب جنوب به سمت قرب اراد ارومی اهواز بجنورد سی و هفت هفته چل و یک چل و هشت پنجاه و پنج اردبیل اسفهان ایلام بندر عباس بوشهر شهر تبریز تهران بیست و شش چلو و شش بیست و هفت دو, دو پنج و یک سی و هشت پنج خرم آباد رشت زاهدان ساری سنندشی راز قم کرمان گرگان همدان زد هفت دو دو و یک پنجاه و شش پنجاه و هفت، پنج سی و نه شست و چهار پنج چهل و سه مومیز پنج دهم سی و دو پنجاه و چهار پنج زنجان سمنان شهر کرد قزوین کرج کرمانشاه مشهد یاسوج بیست و نه چهل و چهار چهل و چهار پنج و سه، پنج و هفت بیست وهشت پنجاه و و چهار مومیز پنج دهم پنجاه و یک پنج جدول یک زاویه انحراف قبل مراکز استانها حفظ اعداد و مطالب داخل جدول جز اهداف برنامه درسی نیست فعالیت با استفاده از جدول بالا فعالیت زیر را انجام دهید کمترین ارومیه و بیشترین انحراف بندر عباس است یک کمترین و بیشترین زاویه انحراف قبله مربوط به کدام استان هاست. دو، زاویه انحراف قبله در استان محل سکونت شما چقدر است؟ خرم آباد و سی و چهار درجه با جست وجود در منابع معتبر و اینترنت زاویه انحراف قبله سایر شهرستان های استان محل سکونت خود را پیدا کنید و با استفاده از روش بالا جهت قبله مدرسه یا منزل خود را تعیین کنید. نه تعریف منظومه شمسی به خورشید و همه اجزایی که به دور آن میچرخند را منظومه شمسی میگویند از چه اجرامی ساخته شده است. منظومه شمسی اجزای منظومه شمسی از چه چیزی به وجود آمده اند منظومه شمسی شامل هشت سیاره و قریب به دویست قمر طبیعی چند خرده سیاره میلیونها سیارک و اجسام سنگی دیگر است که حجم بزرگی از فضا را اشغال کرده اند و همگی به دور خورشید در حال گردش هستند. شکل شش بیشتر ستاره شناسان معتقدند که همه اعضای منظومه شمسی از ابر عظیم و چرخانی متشکل از گاز و قبار به نام صحابی تشکیل ق مریخ زمین ناهید اتارت، نپتون اورانوس زهل مشتری سیارات درونی یا زمین مانند یا سنگی سیارات خارجی یا مشتری ماننده یا گازی ستاره از خود نور دارد اما سیاره ندارد سیارات بهره و وسیک سیاره میچرخند اما ستاره به دور 0.01 جمع آوری اطلاعات مرکز کهکشان دو درباره تفاوت سیاره و ستاره اطلاعاتی را جمع آوری کنید و در کلاس ارائه نمایید تعریف امروزی سیاره چیست سیارات چه ویژگی دارند در دوره ابتدایی آموختید که سیارات از خود نور ندارند و به دور یک ستاره در گردش اند و ممکن است دارای یک یا چند قمر نیز باشند. امروز دانشمندان معتقدند که سیاره به جرمی گفته می شود که در مداری به دور خورشید چرخد و دارای جرم کافی برای ایجاد شکل کروی و جذب اجرام کوچکتر اطراف مدار خود باشد. سیارات به طور کلی به دو دسته تقسیم شوند. گروه اول که شامل تیر، عطارد، ناهید، زهره، زمین، ارز و بهرام، مریخ، را سیاره های سنگی، درونی، مینامند و گروه دوم که شامل مشتری، برجیس، کیوان، زهل، اورانوس و نپتون را سیاره های گازی، بیرونی مینامند. این آمند سیارات به دو گروه تقسیم می شوند، آنها را نام ببرید و مثال بزنید سوالات جدول کدام سیارات قمر ندارند. اطارت و زهره داغترین و سردترین سیارات کدامند؟ اتارت داغترین و نپتون سردترین طول سال کدام سیاره کمتر و کدام سیاره بیشتر است. اتارت نپتون زمان حرکت انتقالی قطر، کیلومتر. سیار تیر اطارت 82 و 8 شبانه روز درونی ناهید زهر 225 شبانه روز زمین عرض بهرام مریخ مشتری برجی 365 شبانه روز 672 8 شبانه روز بیرونی کیوان زهل اورانوس 11 مومیز 82 و 600 سال 29 مومیز 44 سدوم سال 82 و 400 سال 69 مومیز 8 دهم سال 1 16-10-15 دما تعداد غمرها جنس سنگی، سنگی،, سنگی سنگی سنگی سنگی گازی گازی گازی گازی مثبت 427 4880 ۲ 12100 و ه 4 و هصد و ه تا چهار صد سی و هفت دوده مثبت سی و و هفت۵ و 6 هده 6 هزار و 1400 نبتون جدول دو برخی ویژگی های سیارات حفظ اعداد و مطالب داخل. جدول جزء اهداف برنامه درسی نیست و با توجه به جدول ویژگی سیارات در شکل زیر نام سیاره های واقع در محدوده های الف، و ترا بنویسید. الف کیوان، مشتری، اورانوس، نپتون بزرگتر از زمین الف، مریخ، کیوان، مشتری، اورانوس، نپتون طول سال بیشتر دارای قمر تمریخ، کیوان، مشتری، اورانوس، نپتون مریخ، کیوان، مشتری، اورانوس، نپتون از زمین فکر کنید خیر زیرا اتارت به خورشید نزدیک و سطح مقابل به خورشید بسیار داغ است به نظر شما آیا امکان حیات در اتارت و مشتری وجود دارد؟ چرا؟ مشتری همگانی می دانید و فشار اتمسفر آن کشنده و وسط آن توفانهای عظیم و سردی در جریان است تا قبل از نشست اتحادیه بین المللی نجوم در سال 2006 میلادی پلوتو آخرین و کوچکترین سیاره منظومه شمسی محسوب می شد. اما بر اساس رای گیری انجام شده در آن نشست این جرم آسمانی به دلیل جرم کم و عدم توانایی در جذب اجرام کوچکتر اطراف مدار خود از رده سیاره های اصلی خارج و به رده خرده سیاره ها وارد شد. بر اساس های فاصله سنجی انجام شده در سال 2014 و چهارده میلادی عریس دورترین جرم شناخته شده منظومه شمسی است که مدار آن دورتر از پلوتو و اندازه آن بزرگتر از پلوتو بوده و دارای یک قمر از چرا پلوتو جزو سیارات نیست. نام خورده سیاره سرس قطر کیلومتر پلوتو ماکی ماکی عریس دو هزار و سی و, و, و یک برای مطالعه یک هزار, و, و, دو هزار و, و, و, و یک قمر چیست؟ زمین چند قمر دارد؟ و چه نام دارد؟ به جرمی آسمانی که تحت تاثیر نیروی گرانش به دور یک سیاره در ماه قمری گفته می شود، زمین تنها دارای یک گردش استاه به چه شد دور زمین کر قمر است که ماه نام دارد؟ ماه با سرعت متوسط یک کیلومتر ثانیه در مدار بیزی به دور زمین میگرد فاصله متوسط کند. مدار چرخش ماه به دور زمین حد هم توسط مام نیزمین چقدر است. فاصله ردار قمر مصنوع کیلومتر است ماهواره ها نیز به عنوان مصنوعی در مدارهای ما این شکل هفت چرخش ماهواره به دور زمین دور زمین میچرخند شکل هفت. آنها بر اساس نوع مموریت ماهواره های رشد کدام به متفاوتی به دور زمین می‌گردند؟ کار محواره های مخابراتی، امکان ارتباطات تلفنی و کاربرد در ارت ارسال برنامه های رادیو و تلویزیونی و امواج راداری است محواره هواشناسی در پیشبینی وضعیت هوا به هواشناسان کمک میدا کنند یکی دیگر از کاربردهای های محواره ها تعین موقعیت و مسیریابی است. آیا می دانید سازوکار دستگاه های موقعیت یاب جهانی گیبس چگونه است؟ فعالیت با انجام یک فعالیت چگونگی تعیین موقعیت پوسیله ماهواره را بیان کنید وسایل و مواد لازم خط کشم داد، پرگار یک برگه کاغذ روش اجرا کاغذ یک یک دایره به شعاع سهسانیم تر بر روی کنید. رسم دو با فاصله چهار سانتیمتر تر از مرکز دایره اول یک دایره دیگر به شعاعت سه سانتییم رسم کنید. دو دایره در چند نقطه یکدیگر را قطع کردند. چهار دایره سوم را با همان شعاع سه سانتیمتر تر به فاصله از دو دایره قبلی به گونه ای رسم کنید که محیط آن منطبق بر یکی از نقاط طلاوی دو دایره قبلی باشد. پنج نقطه اشتراک سه دایره را علامت گذاری کنید. سازوکار دستگاه های موقعیت یاب، گبس، نیز این گونه است. سیستم موقعیت یاب جهانی از 24 و چهار ماهواره تشکیل شده است. هر ماهواره مساحت محدودی از سطح زمین را به صورت دایرهای پوشش می دهد. فاصله ماهواره ها به گونه ای است که همیشه منطقهای به صورت اشتراک بین دو ماهواره مجاور هم ایجاد می شود در هر نقطه از زمین هنگامی که یک صد و دو دستگاه گپس روشن می شود ابتدا از نزدیک ترین شکل سه ماهواره موقعیت یا به سیستم موقعیت یا به جهانی از چند ماهواره ساخته شده و چگونه موقعیت بابی کنند می نیست سپس ماهواره اطراف خود انباج دریافت می کند و در دایره تحت پوشش آن قرار می گیرد. در این حالت دستگاه گبس در هر نقطه ای از دایره ممکن است باشد بنابراین موقعیت دقیق آن قابل اندازه گیری دستگاه گبز با دومین ماهواره ارتباط برقرار می کند و جای دستگاه بین منطقه مشترک دو دایره می باشد و هنوز دستگاه قادر به تشخیص دقیق موقعیت نیست. سپس دستگاه گبس با سومین ماهواره ارتباط برقرار می کند. و یک نقطه مشترک بین سه ماهواره به دست می آورد. نقطه حاصل موقعیت دستگاه گبز است شکل 8 جمعآوری اطلاعات ماهواره نظامی اکتشاف معدن، هواشناسی و ماهواره نظامی در مورد سایر کاربردهای های ماهواره ها و سرنوشت آنها پس از اتمام ماموریت اطلاعات جمعآوری کنید و به صورت تصویری به کلاس ارائه نمایید گرانش ماهواره را به سمت پایین و به سمت اتمسفر ماهواره را به میهوی ماهواره دراز میمیره سریعت بدکشاند. سرعت ماهواره هنگام برخورد با ملکولهای خارجی ترین لایه اتمسفر کم میشود هنگامی که نیروی گرانش یا تمامی ماهواره میسوزد رده و داخت میشود سیارک ها چه چیزهایی هستند و در کجای منظومه شمسی هستند؟ در منظومه شمسی افزون بر سیاره ها و قمرهای آنها میلیاردها فضایی دیگر به نام سیارک جرم در حال چرخش به دور خورشید هستند. بیش از 90 درصد این سنگهای فضایی در ناهیهی به نام کمربند اصلی سیارکها که بین مدار مریخ و مشتری واقع شده است تمرکز یافتهاند شکل 9. شهاب سنگها شهاب سنگ چیست؟ هر سال هزاران سنگ فضایی وارد جو زمین می شوند و به سطح زمین برخورد می کنند. این سنگها شهاب سنگ شخانه نام دارند بیشتر شهاب سنگ شهاب سنگ ها در اوغیانوس سقوط میکنند می کنند چه خطراتی از آنهایی که بر سطح خشکی ها برخورد می دارند. و فقط تعداد کمی از آنها در مناطق مسکونی و یا نزدیک به آن سقوط می کنند و توسط انسانها شکل نحمدار مدار ها می شوند، شکل ده، اگر یکی از این شکل ده نمونه شهاب سنگ یافت شده در بیابان لود سنگ ها به یک سفینه فضایی یا ماهواره‌ها برخورد کند، می در فعالیت آن اختلال به وجود آورد و یا آن را از بین ببرد. این مشکلی است که هر لحظه پیچیده ترین تکنولوژی های انسان را تهدید می کند شهاب سنگ از لحاظ جنسی یک سنگی منفی دو آهنی سه، سنگی آهنیصد و صفه کنید چون بیشتر سطح زمین را آب فرا گرفته است و بیشتر شهاب سنگ ها در اقیانوس سقوط می کنند. چرا بیشتر شخانه ها در اقیانوسها سقوط می کنند؟ آیا می‌دانید برای مطالعه شهاب به سه گروه یک سنگی منفی دو آهنی سه سنگی آهنی تقسیم می‌شود؟ در بهمن ماه سال 1382 و دو شهاب سنگ، گلپایگان شهاب سنگ نرافت در مرداد 1350 و سه و شهاب سنگ ورامین در دوره ناصرالدین شاه به زمین اصابت نمود. در سال 1392 و دو برخورد یک شهاب سنگ در اورال روسیه باعث کشته شدن پنج نفر گردید. شهاب چیست چر و چرا نورانی هستند؟ سفر به فضا هر شب می در اسمان تیرهای درخشان نور را دید که به سرعت می گذرند آنها شهاب نام دارند. قطعاتی از سنگ و قبار رها شده از مدار سیارک که در هنگام ورود به جو زمین می سوزند و شهابها را به وجود می آورند. این زراد در سراسر منظومه شمسی پراکنده و سرگردان هستند. علاوه بر زمین کدام سیاره قابلیت بررسی حیات دارد؟ شکل یازده بارش شهابی بر فراز قله دماوند همین با اینکه انسان قادر به سفر در فضا نیست منظومه های فراخورشیدی چگونه کشف شده بحث فضا و سفر به آن از گذشته دور مورد توجه بوده است انسان انسانها میدانند علاوه بر زمین فقط سیاره مریخ قابلیت بررسی شرایط حیات را دارد ولی سایر سیارات منظومه شمسی قابلیت حیات ندارند به دلیل ذهن انسان به یافتن حیات در سیارات فراخورشیدی مشغول است اکنون به روش های مختلف و غیر مشاهده بیش از هزار منظومه فراخورشیدی کشف شده است و انسان سعی دارد تا با ارسال سفینه فضایی اطلاعات بیشتری را کسب نماید سفر به فضا همان که حیجان انگیز است. مشکلات خاص خود را نیز دارد. انسان ماهها در سفینه فضایی به دور زمین گردش کرده و تا سطح ماه نیز پیش رفته است. دانشمندان تجهیزات علمی و دوربینهای پیشرفتهای را در سفینه های بدون سرنشین نصب کرده اند و آنها از فضای میان سیارهای و سیارات مختلف اطلاعات و عکسهای بینظیری به زمین ارسال کرده اند. جامعه اطلاعات سفینه های فضایی چگونه اطلاعات خود را به زمین ارسال می کنند. با مراجعه به منابع معتبر علمی درباره مشکلات فضانوردان در فضا و اقدامات علمی که برای رفع آنها انجام شده. اطلاعاتی جمع آوری کنید و در کلاس ارائه کنید مشکل در گردش و پمپاژ خون پوکی استخوان به علت عدم وجود گرانش خطر ابتلاع به سرطان به خاطر پرتوهای کیهانی افزایش فشار خون کاهش حدود 20 درصد توده ازلانی در طول تنها 11 روز زندگی در فضا فاصله پیدا کردن مهره های کمر خطر التهاب تاندونها ها و تجمع چربی کاهش حجم عضلات حمایت کننده پشت و گردن مشکل در حرکت حتی در حالت بی وزنی افزایش بیش از اندازه کلیسا در خون صد و چهار Button pick on button taback off button hit on it, button left. Heading level, heading level set, heading level set. Sample product it, platform voice key button. It, slider yet. Dom set dot. Slider yet. Sort that. Slider yet. Volume. Combo box collapse. Microsoft. The long run line. Natcho. Pattern test test. Version in pattern test test. Virtual record icon. Virtual record dialog. Stop button. Alt. Alt. Alt. Alt. Alt.